اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما الله يفعل ما يريد. این پیام بران که نام برخی از آنان گذشت بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی سبن مریم نشانه های روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برایشان آمد با یکدیگر جنگ نمی کردند. ولی آنان با هم اختلاف کردند پس برخی از آنان ایمان آورده و برخی از آنان کفر برزیده و اگر خدا میخواست با هم جنگ نمی کردند ولی خداوند آنچه را میخواهد انجام می‌دهد یا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون ای کسانی که ایمان آورده اید. از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آن که روزی فرارست که در آن نخرید و فروش است و دوستی و شفاعتی و کافران خود ستمکارانند الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنت ولا نوم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 وسع كرسیه السماوات والأرض ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم الله هیچ معبودی به حق جز او نیست زنده نگهدار و مدبر است چرت او را فراگیرد و نخواب آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرش آن است میداند و به چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد خواهد اهات نمی یابد کرسی او آسمانها و زمین را در بر گرفته و نگاه داری آن دو بر او گران و دشوار نیاید و او بلان مرتبه و بزرگاز لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في صام لها والله سميع عليم و در دین هیچ اجباری نیست به راستی که راه راست از راه انحراف روشن شده است پس هر کس به تاقود کفر برزت و به خدا ایمان آورد پس به راستی که به دستگیره محکمی چنگ زده است که آن را نیست و خداوند شنوای داناست،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 اولئی اصحاب فيها خداوند یاور و سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند. آنها را از تاریکی ها به سوی نور بیرون می و کسانی که کافر شدند یاور و سرپرست آنها تاغوت است که آنان را از نور به سوی تاریکی ها بیرون می آنها اهل آتشند و جاویدان دران خواهند ماند. اَلَمْ تَرَ إِلَا الَّذِي حَجَّ إِبَرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ إِبَرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَا قال ابراهیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فاأتی بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين آیا ندیدی کسی که با ابراهیم دربارهٔ پروردگارش به مجادله و گفتگو پرداخت بدان خاطر که خداوند به او پادشاهی داده بود هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من کسی است که زنده می کند و میمیراند نمرود گفت من نیز زنده می کنم و میمیرانم ابراهیم گفت همانا خداوند خورشید را از مشرق میآورد، پس تو آن را از مغرب بیاور آن کسی که کفر ورزیده بود مبهود شد و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند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 قَالَ بَلَّ بِذْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا یا همانند آن کسی که بردهی گذشت در حالی که دیوارهای آن به روی سقف ها فرو ریخته بود او با خود گفت چگونه خداوند این را پس از مرگشان زنده می کند پس خداوند او را به مدت ست سال میراند پس زنده اش کرد و به او فرمود چقدر درنگ کردی؟ گفت یک روز یا بخشی از یک روز را درنگ کردم فرمود نه بلکه صد سال درنگ کردی پس به غذا و نوشیدنی خود نگاه کن تغییر نکرده است و به علاق خود نگاه کن که چگونه متلاشی شده است ما چونین کردیم تا به تو پاسخ گوییم و همتورا نشان ای برای مردم در مورد معاد قرار دهیم و اکنون به استخانهای قلاغ خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیبند می دهیم. سپس گوشت بران می پوشانیم پس هنگامی که قدرت الهی بر زنده کردن مردگان برایش آشکار شد گفت میدانم که خداوند بر هر چیزی تواناست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 قال فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرْهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ دُعْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعِياً وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بياد بياد بياد انگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی. فرمود مگر ایمان نیاورده ای گفت چرا ولی میخواهم که قلبم آرام بگیرد فرمود پس چهار پرنده را برگیر انگاه انها را پیش خود قطعه قطعه کن و در هم بیامیز سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را بگذار آنگاه آنها را بخوان شتابان به سوی می آیند و بدان که خداوند توانمند و حکیم است مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشی یکصد دانه باشد و خداوند برای هر کس که بخواهد چند برابر می کند و خدا گشایشگر داناست الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما منا ولا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون که اموال خود را در راه خدا انفاق کنند سپس در پی آنچه انفاق کرده اند مننت نمیگذارند و آزاری نمیرسانند پاداش آنها برایشان نزد پروردگارشان محفوظ است و ترسی بر آنان نیست و ایشان اندوه گین شوند قول معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعها آذان والله سخن پسندید و گذشت بهتر از صدقیه است که آزاری به دنبال آن باشد و خداوند بینیاز و برد بار است. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله رياءا ان نافوا ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله کمثل صفوان علی تراب فأصابه وابل فَتَرَكَهُ صلده لا يقدرون على شيء مما کسبوه والله لا يهد القوم الكافرين ای کسانی که ایمان آبرده اید خود را با منت و آزار باطل مکنید مانند کسی که مالش را برای نشان دادن به مردم انفاق می کند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارد پس مثل او همچون مثل سنگ صافی است که بر روی آن اندکی خاک باشد آنگاه باران تندی به آن برسد و آن را صاف و سخت بر جای گذارد آنان از آنچه که انجام داده اند چیزی به دست نمیآورند و خداوند گروه کافران را هدایت نمی و مثل الذین یون امواله مبتغاء مرضات الله و تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير و مسئله کسانی که انوال خود را برای طلب خشنودی خدا و به خاطر یقین و باوری که در دلهایشان به پاداش خدا دارند انفاق می کنند. همچون مسئله باقی است که بر پشت ای قرار دارد و باران تندی به آن برسد. پس میبه های خود را دوچندان دهد و اگر باران تند به آن نرسد باران نرمی و خداوند. به انشمی کنید بیناست ایواد دو احدكم ان تكون له جنة من نخيل و اعناب تجری من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت کذالک الله لکم آیا کسی از شما دوست دارد که باقی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آنها نهرها روان است و برای او باغ از هر گونه به ای فراهم باشد و در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی خورد سال و ناتوان دارد آنگاه گردبادی که در آن آتش است، به آن برخورد کند و یک سر بسوزد، این چونین خداوند آیات خود را برای شما روشن می سازد. شاید که شما بیندیشید. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و من ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد اي كساني كه ایمان آورده ای. از چیزهای پاکيزه اي که به دست آورده ای. و از آنچه از زمین برای شما بیرون آورده ایم انفاق کنید و برای انفاق کردن قصد ناپاک آن را نکنید در حالی که خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر آنکه در آن چشم پوشی کنید و بدانید که خداوند بینیاز و سدوده است الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء والله یعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم شیطان شما را به هنگام انفاق میترساند و وعده توهیدستی میدهد و شما را به زشتی ها امر میکند و در حالی که خدا از جانب خود به شما وعده آمرزش و فزونی نعمت میدهد و خداوند گشایشگر داناست يُؤْتِ الْحِكْمَةَ من يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ خداوند به هر کس که بخواهد حکمت و دانش میدهد و به هر کس حکمت داده شود بی شک خیر فراوانی داده شده است و جز مندان پند نمیگیرد. گیرد وما انفقتم من نفقت، او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار و هر چیزی را که انفاق کنید یا هر نظری که ببندید قطعا خداوند آن را میداند و برای ستمگران هیچ یاوری نیست این تبدو صدقات فن عماهی و این تخفوها و الفقراء فهو خیر لكم و عنكم من سیئاتکم والله بما تعملون خبير اگر صدقه ها را آشکار کنید چه نیکوست و اگر آنها را پنهان دارید و به توهی دستان بدهید پس این برای شما بهتر است و برخی از گناهان شما را میزداید و خداوند به آنچه می میکنید آگاه است لیس هداهم ولیکن إن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون هدایت آنان بر عهده تو نیست ولیکن خداوند هر که را بخواهد هدایت میکند و آنچه از مال انفاق میکنید برای خودتان است و جز برای طلب خوشنودی خدا انفاق نکنید و آنچه از مال انفاق میکنید پاداش آن به طور کامل و تمام به شما داده میشود و به شما ستم نخواهد شد لِلْفُقَرَاءِ الذين أُحْصِرُوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف تعرفهم بسيماهم. تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ صدقات شما برای توهی است که در راه خدا محسور و بازداشته اند و نمی‌توانند برای تأمین هزینه‌ی زندگی در زمین سفر کنند از شدت خویشتنداری افراد نا آگاه آنها را بی نیاز پندارند. آنها را از چهره هایشان می شناسی با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند و آنچه از مال انفاق می کنید قطعا خدا به آن آگاه است فقون اموالهم بالليل کسانی که اموال خود سرا فلهم ربهم در شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند مزد آنها نزد پروردگارشان برایشان محفوظ است و نه ترسی بر آنها است و نه ایشان اندوهگین می شوند الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَا يَقُومُونَ <تصفيق> إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ و من عادف که اصحاب النار هم فیها خالدون کسانی که ربا میخورند خورند روزی قیامت از گور برنمی <س> قیزند <players> مگر مانند برخواستن کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده این بدان سبب است که آنان <مشان> گفتند همان آداد <مشان> و ستد هم مثل <مشان> رباست و در حالی که خدا داد و ستد را حلال کرده و ربا را حرام نموده است. پس همانا هر کس که از جانب پروردگارش پندی به او رسد، آنگاه از ربا خاری باز ایستاد، آنچه گذشته از آن اوست، و کارش به خدا واگذار می شود، و کسی که به خاری باز گردد، آنان اهل آتشند و در آن جاویدان خواهند بود، انحب الله الرّبا ورب صدقات والله لا يحب كل ك ف خداوند ربا را نابود میکند و صدقات را افزایش میدهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنکاری را دوست نمی دارد این. الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون پرستی کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام داده اند و نماز را برپا داشتند و را پرداخته اند پاداش آنان نزد پروردگارشان برایشان محفوظ است و نه ترسی بر آنهاست و نه ایشان اندوهگین میشوند یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من ان كنتم مؤمنین ای کسانی که ایمان آورد اید از خدا بترسید و آنچه از مطالبات ربا باقی مانده است رها کنید اگر مؤمن هستید. و این لم تفعلوا بِحَرْبٍ بحرب من الله ورسوله وإن فَلَكُمْ تبتم فلكم رؤوس تَظْلِمُونَ لا تظلمون ولا تظلمون. پس اگر چنین نکردید یقین داشته باشید که خدا و رسولش با شما جنگ خواهند کرد و اگر توبه کردید اصل سرمایه هایتان از آن شماست نستم می کنید و نبر شما ستم وارد می شود و این کاندو عسرت فنظرت الى میسره و تصدقوا تصدقو خیر لكم این کنتم تعلمون واگر بدهکار تنگ دست بود پس تا هنگام گشایش و توانایی مهلت دهید و اگر توانایی پرداخت ندارد بخشیدن آن برای شما بهتر است اگر بدانید واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفی كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون و از روزی بترسید که در آن روز به سوی خدا بازگردانده می شوید سپس به هر کس پاداش آنچه انجام داده تمام و کامل داده می شود و به آنان ستم نخواهد شد یا ایوها الذين آمنون إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنىأ لا ترتابوا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 وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه به هم دیگر تا مدت معینی می دادید آن را بنویسید و باید نویسنده ای آن را دادگرانه بین شما بنویسد و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن همانگونه که خدا به او آموزش داده خودداری کند پس باید بنویسد و با آن کسی که حق بر زمه اوست باید املا کند و باید از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و از آن چیزی نکاهد پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست صفیح یا ناتوان باشد یا خود نمی نمیتواند املا کند پس باید ولی او با رعایت عدالت املا کند و دو شاهد از مردانتان را گواه بگیرید پس اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از میان گواهانی که به عدالت آنان رضایت دارید گواه بگیرید تا اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد دیگری به او یادآوری کند و گواهان نباید به هنگامی که انها را برای گواهی دعوت می کنند خودداری کنند و از نوشتن بدهی تا سررسیدش چه کوچک باشد یا بزرگ ملول نشوید این نوشتن شما در نزد خدا به ادالت نزدیکتر و برای گواهی دادن استوارتر و برای آنکه دچار شک و تردید نشوید بهتر می باشد مگر اینکه داد و ستدی نقدی باشد که بین خود دست به دست می کنید. پس در این صورت گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید و هنگامی که داد و ستت کردید گواه بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد زیانی برسد و اگر چنین کنید بیشک نافرمانی شما خواهد بود و از خدا بترسید و خداوند به شما آموزش می دهد. و خدا به همه چیز داناست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 و من يكتمها ها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم و اگر در سفر بودید و نویسنده این یافتید پس چیزی گروگان بگیرید و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست پس آن کس که امین شمرده شده باید امانت خود را باست دهد و باید از الله که پروردگار اوست بترسد و شهادت را کتمان نکنید و هر کسان را کتمان کند بیشک قلبش گناهکار است و خدا به آنچه می‌کنی داناست لله مَا في السَّمَاوَاتِ و ما في الْأَرْضِ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 آنچه در آسمان ها و زمین است، از آن خداست و اگر آنچه را در دل خود دارید آشکار کنید یا آن را پنهان نمایید خداوند شما را به آن محاسبه می کند. پس هر کس را بخواهد میبخشد و هر کس را به خواهد عذاب می کند و خداوند بر هر چیزی تواناست. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وغسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصیر پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده است و مؤمنان نیز همه به خدا و فرشتگان او و کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند و گفتند میان هیچ یک از پیامبرانش فرق نمیگذاریم و گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم پروردگارا آمرزش تو را خواهانیم و بازگشت به سوی توست لا یکلیف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت و علیها مکتسبت ربنا لا تؤاخذنا این نسینا او أخطأنا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 مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند آنچه از خوبی به دست آورده به سود او و آنچه از بدی به دست آورده به زیان اوست پروردگارا اگر فراموش یا خطا کردیم ما را معاخذ نکن پروردگارا بارگiran را بر دوش ما مگذار چنانکه آن را بر دوش کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی پروردگارا آنچرا که طاقت تحمل آن را نداریم بر دوش ما مگذار و ما را بیامرز و به ما رحم فرمای تو مولا و سرور ما ای. پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الله لا اِلَّا هو الْحَيُّ الْقَيُّومِ <الف>، لام میم الله هیچ معبودی به حق جز او نیست زنده و جهان هستی را نگهدار و مدبر است نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و التورات والانجیل کتاب قرآن را به حق بر تو نازل کرد که تصدیق کننده آنچه که پیش از آن است و تورات و انجیل را من قبل للناس الفرقان. الله لهم عذاب والله پیش از آن برای هدایت مردم نازل کرد و نیز فرقان را نازل کرد. به راستی کسانی که به آیات خدا کافر شدند، عذاب سختی دارند و خداوند توانمند و صاحب انتقام است. این الله لا یخفا علیه فی الارض ولا فی السماء. هیچ چیز نه در زمین و نه در آسمان بر خدا پوشیده نمیماند هو الذی یصوّرکم فی الأرحام کیف یشاء لا اله إلا هو العزیز الحکیم او کسی است که شما را در رحمها هرگونه هر گونه که بخواهد صورت میکند هیچ معبودی جز او نیست که توانمند و حکیم است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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكرون الا اول الالباب او کسیست که کتاب قرآن را بر تو نازل کرد بخشی از آن آیات محکم است که آنها اساس کتاب است و بخش دیگر متشابهات است اما کسانی که در دلهایشان کجی و انحراف است برای فتنجویی و به خاطر تعویل آن از متشابه آن پیروی می‌کنند و در حالی که تعویل آن جز خدا نمی‌داند و راسخان در علم می‌گویند ما به همه آن ایمان آوردیم همه از طرف پروردگار ماست و جز خردمندان متذکر نمی‌شوند ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك أنت الوهاب میگویند یاند پروردگارا دلهای ما را بعد از آنکه ما را هدایت کردی منحرف مگردان و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش پراستی که توبخشنده ای ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد پروردگارا بی تو مردم را برای روزی که در آن تردیدی نیست جمع خواهی کرد قد خداوند بعدي خود را خلاف نمی کند ان الذين كفروا لن تنفع عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار به راستی کسانی که کافر شدند، انوال و فرزندانشان چیزی از عذاب خدا را از آنان باز ندارد و آنان خود هیزم آتش دوزخ هستند. کدع بی آل فرعون والذین من قبلهم کذبو بآیاتنا فاخذهم فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب عادت این کافران همچون عادت آل فرعون و کسانی است که پیش از آنها بودند. آیات ما را تزیب کردند پس خداوند آنها را به سزای گناهانشان گرفت و خداوند سخت کیفر است. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وما بيس به کسانی که کافر شدند بگو به زودی مغلوب خواهید شد و سپس در قیامت به سوی جهنم مشور میشوید و چه بد جایگاهی است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 ان در دو گروهی که در میان بدر با هم روبرو شدند نشانه و عبرتی برای شما بود یک گروه در راه خدا می جنگید و گروهی دیگر کافر بودند آنها مؤمنان را با چشم خود دو برابر آنچه بودند میدیدند. و خداوند هر کس را بخواهد با نصرت و یاری خود تأیید می میکند به راستی در این ماجرا برای صاحبان بینش عبرتی است زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المعب محبت خواستنیهای مادی از جمله زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و از پای نشاندار و چهار پایان و زراعت برای مردم آراسته شده است اینها همه کالا و متاع زود گذر زندگی دنیاست و حال آنکه سرانجام نیک نزد خداست قل اؤنَببئوکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها قالدين فیها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد بگو آیا شما را به بهتر از اینها خبر دهم برای کسانی که تقبا پیش کرده اند در نزد پروردگارشان باقه است که از زیر درختان آنها نرها روان است در آن جاودانه خواهند بود و همسرانی پاکیزه دارند و همچنین از خوشنودی خداوند برخوردارند و خداوند به احوال بندگان بیناست الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا كسانيكي میگویند پروردگارا به راستی ما ایمان آورده ایم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگهدار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار همانا شکیبایان و راستگویان و برداران و انفاق کنندگان و خواهان در سهرگاهان شهد الله انه لا خداوند گواهی داده است که معبودی به حق جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش نیز بر این مطلب گواهی دهند در حالی که خداوند در جهان هستی قیام به ادالت دارد معبودی به حق جز نیست که توان مند و حکیم است این الدین عند الله الاسلام و مختلف الذین الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینهم و من یکفر الله فإن الله سريع الحساب همانا دین حق نزد خدا اسلام است و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شده اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه علم و آگاهی برای آنان آمد آن هم به خاطر سرکشی و حسدی که میان آنان بود و هر کس به آیات خدا کفر ورزد پس بداند که خداوند سریع الحساب است فَإِنْ حَجُّوْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُ الكتاب وَالْأُمِّيِّنَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوْ فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ پس اگر در باری دین و توحید با تو مهاجه و ستیز کردند بگو من روی خود را تسلیم خداوند نموده ام و هر کس که پیرو من است نیز خود را تسلیم خدا نموده است و به اهل کتاب و بیسوادان بگو آیا شما هم تسلیم شده اید پس اگر تسلیم شوند قطعا هدایت یافتند و اگر روی گردان شدند و سرپیچی کردند پس نگران مباش زیرا بر تو فقط رساندن پیام خداست و خداوند به احوال بندگان بیناست ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس فبشرهم فبشرهم کسانی که به آیات خدا کفر وپیامبران را به ناحق میکشند و نیز کسانی از مردم را که به عدالت امر میکنند به قتل میرسانند پس آنان را به عذابی دردناک مجدب بده اولائک الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین آنان کسانی هستند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و برای آنان هیچ یاور و مددکاری نیست علم تر ایلالذین اوتو نصبا من الکتاب یدعون إلى کتاب الله لیحکم بینهم ثمت يتولى فريقٌ منهم و هم آیا ندیدی کسانی را که بهرهی از کتاب آسمانی داده شدند به سوی کتاب خدا دعوت می شوند تا در میان آنها داوری و حکم کند پس گروهی از آنان روی میگردانند در حالی که اعراز دارند ذلك بأنهم قالوا لن تمسن النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون این عمل آنها بدان سبب است كه آنان گفتند آتش جز چند روزی به ما نخواهد رسید و این دروغ هایی که میبافتند آنان را در دینشان فریفته و مغرور ساخت فکیف اذا جمعناهم لا فکیف اذا جمعناهم یوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون پس چگونه خواهد بود حالشان؟ هنگامی که آنها برای روزی که شکی آن نیست گرد آبریم و به هر کس پاداش آنچه فراهم کرده به تمام و کمال داده شود؟ لی آنهاست هم نخواهد شد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و الملك ممن تشاء وتعز من تشاء و من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير بگو بار اله ها ای دارنده پادشاهی به هر کس که بخواهی پادشاهی میبخشی و از هر کس بخواهی پادشاهی را میگیری و هر کس را بخواهی عزت می دهی و هر که بخواهی خار میکنی کنی همه ی خوبی ها به دست توست بیشک شک تو بر هر چیز توانایی. تولی جن لیل فی النهار و تولی جن نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و من تشاء بغیر حساب شب را در روز داخل می کنی و روز را در شب داخل می کنی و زنده را از مرده بیرون میآوری و مرد را از زنده بیرون میآوری و به هر کس بخواهی بیشمار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 و الله نفسه و الله المصير مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست و ولی خود بگیرند و هر کس چنین کند با خدا هیچ رابطه ای ندارند مگر اینکه از آزار و عذیت انها بترسید و خداوند شما را از کیفر خودش برحذر میدارد و بازگشت بسوی خداست. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله و يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. بگو اگر آنچه در سینه های شماست پنهان دارید. یا آشکارش کنید خداوند آن را میداند و نیز آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است میداند و خداوند بر هر چیزی تواناست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 والله الله بالعباد روزی که هر کس آنچه را از خیر و نیکی انجام داده و آنچه از بدی مرتکب شده حاضر شده می یابد و آرزو می کند ای کاش میان او و آن کارهای بد فاصله ای دور بود و خداوند شما را از کیفر خودش بر می دارد و در عین حال خدا به بندگان مهربان است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويرفع لكم ذنوبكم والله غفور رحیم بگو اگر خدا را دوست می‌دارید پس از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد گناهانتان را برایتان بیامرزد زد و خداوند آمرزنده مهربان است. قل اطیع الله تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بگو خدا و پیام او را اطاعت کنید پس اگر پشت کردند قطعاً خداوند کافران را دوست نمی دارد این الله اصطفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین براستی خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید. بعضها من بعد والله سميع عليم. فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند و خداوند شنوای و داناست. اذ قالت امرأة عمران رب انت ننظرمدون هنگامی که همسر امران گفت پروردگارا من آنچه را در شکم دارم برای تو نظر کردم که آزاد باشد پس از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثًا اعلم بما وضعت وليس مريم بك من پس هنگامی که او را بزاد گفت پروردگارا من او را دختر زاده ام و خدا به آنچه او زایید داناتر بود و پسر همانند دختر نیست و من او را مریم نام گذاردم و من او را و فرزندانش را از شر شیطان رانده شده به تو پناه میدهم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 نا لکی قالت و من عند الله این الله یرزق من یشاؤ بغیر حساب آنگاه پروردگارش او را به طرز نیکوئی پذیرفت و به طرز شایسته ای او را رویانید و کفالت او را به زکریا سپرد هرگاه زکریا وارد مهراب او میشد نزد او غذا و رزقی می یافت. زکریا می گفت ای مریم این از کجا برای تو آمده است. مریم میگفت: این از جانب خداست که خدا به هر کس بخواهد بیشمار روزی می دهد. هنالک دعا زکریه ربه قال رب هبلی من لدنك کذریتا طیبا اینک سمیع الدعاء آنجا بود که زکریه پروردگارش را خواند و گفت پروردگارا از طرف خود فرزند پاکیزئی به من عطا کن به درستی تو شنمندی دعایی فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك آن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمتى من الله وسيدو وحصورا وسيدو وحصورا من الصالحين. <تصفيق> پس در حالی که او در محراب نماز میخواند. فرشتگان او را ندا کردند که خداوند تو را بی احیا بشارت می دهد و او تصدیق کننده کلمه خداست و سرور و تندار و پیامبری از صالحان است قال رب انا يكون لی غلام و قد بلغنی الكبر و عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که پیری به سراغ من آمده و همسرم نازاست فرشته گفت به گونه خداوند هر بخواهد انجام میدهد قال رب اجعل لي آیه قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار زكريا گفت پروردگارا برای من نشانه ای قرار ده فرمود نشانه ات این است که سه روز با مردم جز با اشاره سخن نگویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و شامگاهان و صبحگاهان او را تسبیح بگو و اذ قالت الملائكة یا مریم إن الله اصطفاک وطهرك طهرک على نساء العالمین و به یاد آورید هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است یا مریم قنطی لربکی وسجدی ورکعی مع الراکعین ای مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجد کن و با رکوع کنند کن رکوع کن ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ يحتصمون ای پیامبر این از خبرهای غیبی است که به تو وحی میکنین و تو در آن هنگام که قلم‌های خود را می‌افکندند تا کدام یک سرپرستی مریم را به گیرد نزد آنان نبودی و نیز وقتی که با یکدیگر کشمکش می‌کردند نزدشان نبودی اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ما بياد آورید هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه ای از جانب خود که نامش مسیح ایسابن مریم است بشارت میدهد در حالی که او در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه الهی است و یکلم الناس فی المهد و ومن و الصالحین و در گهواره و در حالت کوهولت با مردم سخن میگوید و از شایستگان است <صحیح> قالت رب ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضا امرا فانما فا یقول لهو كن فيكون. مریم گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که بشری به من دست نزده از فرشته گفت خداوند به دینسان را بخواهد می و هرگاه که اراده چیزی کند فقط به آن میگوید موجود باش پس موجود می شود و الكتاب والحكمة والتوراة والانجیل و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می آموزد.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 وَأُبْرِعُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَأُرَا بِعُنْوَانِ پَيْهَامْبَرِيهِ سوی بنی اسرائیل میفرستد که او به آنان میگوید من از سوی پروردگارتان برایتان نشانه ای آورده ام من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده میسازم آنگاه در آن میدمم پس به فرمان خدا پرنده ای میشود و به فرمان خدا کور مادر زاد و مبتلایان به پیسی را بهبودی میبخشم و مردگان را زنده میکنم و از آنچه می و در خانه هایتان زخیر می کنید به شما خبر می دهم مسلمان در اینها نشانهای ای برای شماست اگر ایمان داشته باشید و مصدقا لما بین یدی من التورات ولی احل لکم بعضا حرم علیکم و جئتکون من ربکم فاتقوا الله و اطیعون و آنچه را پیش از من از تورات بوده تصدیق می کنم و فرستاده شده ام تا بعضی از چیزهایی را که بر شما حرام شده بود حلال کنم و نشانی از طرف پروردگارتان برای شما آورده ام پس از خدا بترسید و مرا اطاعت اینا ان الله ربی و ربکم فعبدو. هذا الله ربی و خداوند پروردگار من و پروردگار شماست پس او را و این است راه راست. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ از هنگامی که ایسا از آنان احساس کفر کرد، گفت یاوران من به سوی خدا چه کسانی هستند، هواریان گفتند ما یاوران دین خدا هستیم، به خدا ایمان آورده ایم و نیز گواه باش که ما تسلیم او هستیم. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین پروردگارا به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از فرستاده تو پیروی نمودیم پس ما را از زمره گواهان بنویس و مك و, و الله والله خیر مکرین و یهود و دشمنان مسیح برای کشتن او نقشه کشیدند و خدا چار جویی کرد و خدا بهترین چار جویان است.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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ به یاد آورید هنگامی را که خدا به ایسا فرمود ای ایسا بیگمان من تو را برگرفته و به سوی خیش بالا میبرم و تو را از آلایش و تهمت کسانی که کافر شدند پاک میگردانم و کسانی را که از تو پیروی کردند تا روز قیامت برتر از کسانی را که کافر شدند قرار می دهم، سپس بازگشت شما به سوی من است، آنگاه در آنچه در آن اختلاف می کردید در میان شما داوری می کنم. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ اما کسانی که کافر شدند در دنیا و آخرت آنان را به عذابی سخت عذاب میکنم و برای آنها یاورانی نیست ومَّ الذي ن آمن وامل الصالحات ففيم اجورهم والله لا يحب الظالمين و اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند پس خداوند مزدشان را به طور کامل به آنان خواهد داد و خداوند ستم کاران را دوست نمیدارد ذالک نتلوه عليك من الایات والذکر الحکیم ای محمد اینها که بر تو میخوانیم از آیات و نشانهای خداوند و قرآن حکمت آمیز است ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقهم من ثم قال فيكون. همانا مثل عیسی نزد خدا همچون مساله خلقت آدم است که او را از خاک آفرید پس به او فرمود باش پس بیدرنگ موجود شد. الحق من ربك فلا تکن من المنترين آنچه درباره ایسا بیان کردیم حق از جانب پروردگار توست پس هرگز از تردید کنندگان مباش فمن حج که من بعد ما جاء که من العلم فقل تعالو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 پس هر کس که در این باره پس از دانشی که به تو رسیده با تو محاجه و ستیز کند، بگو بیایید تا فرزندان و فرزندانتان و زنان و زنانتان و نفوس و نزدیکان و نفوس و نزدیکانتان را فراخوانیم، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ قرار دهیم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم حقا که این همان داستان حق و واقعی مسیح است و معبودی جز خدا نیست و بی خداست که توانمند و حکیم است فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پس اگر روی گردانند بدان که خدا به حال تباه آگاه است قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نعبد إِلَّا الله اَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا <تصفيق> نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّو فَقُولُ شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نسازیم بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد پس اگر از این دعوت روی گرداندند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم yeah. اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ای اه اهل كتاب چرا در باری ابراهیم مجادله و ستیز می کنید؟ در حالی که تورات و انجیل بعد از اون نازل شده است آیا اندیشه نمی کنید؟ ها انتم ها اولئی حاججتم فی ما لکم بهی علم فلمت حاجون فی ما لیس لکم بهی والله یعلم و انتم لا تعلمون هان شما اهل کتاب کسانی هستید که در باری انچه نسبت به آن آگاهی و علم داشتید مهاجه و ستیز کردید پس چرا در مورد چیزی که بدان علم ندارید مهاجه و ستیز میکنید و خدا میداند و شما نمیدانید ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه یک تا پرستی مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود ان ألا الناس سب براهم اتبعوه وهذا ووهذ نبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنن به راستی سزاوار ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی کرده اند و نیز این پیامبر و کسانی که به او ایمان آور اند، و خداوند یاور و ولی مؤمنان است ود الطائفة من أهل الكتاب لو یضلونكم وما یضلون إلا نفسهم وما شعرون گروهی از اهل کتاب آرزو میکردند و دوست داشتند كا شما را گمراه میکردند در حالی که جز خودشان کسی را گمراه نمی و نمیفهمند یا اهل الكتابلیمتک فرون بیایت الله و انتون ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کافر میشوید در حالی که خودتان به صدق و درستی آن گواهی می دهید؟ يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ای اه اهل كتاب چرا حق را به باطل می آمیزید و حق را کتمان میکنید در حالی که خودتان میدانید وقال ائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه نهارا وكفوا اخره لعلهم و گروهی از اهل کتاب به هم دیگر گفتند به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز كافر شوید شاید آنان از اسلام برگردند ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینكم قل إن الهدى هدى, هدى الله أن يؤتى و جز أَ يحجكمُ عدَ رَكُ قُلإِفضَضللَ بدِ اللههِ يُتيمَ از دين شما پيربي کند ایمان نياوريد بگو همانا هدایت هدایت خداست گفتند مبادا به کسی همانند آنچه به شما داده شده داده شود یا در پیشگاه پروردگارتان با شما محاج و کنند بگو به راستی فضل و برتری به دست خداست آن را به هر کس که بخواهد میدهد و خداوند گشایشگر داناست یختص برحمته من والله ذو العظیم هر کس را که بخواهد به رحمت خود مخصوص میگرداند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگ است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 ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون واز اهل كتاب کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شموری آن را به تو باز میگرداند و از آنان کسی است که اگر او را بر دیناری امین شموری آن را به تو باز نمیگرداند مگر تا زمانی که بر سر او ایستاده باشی این بدان خاطر است که آنان میگویند در مورد خوردن مال امیین گناهی برمانی است و بر خدا دروغ میبندند در حالی که میدانند بلا من اوفا بعهده و اتقا الله يحب المتقین هر به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری نماید پس بی گمان خداوند پرهیزگاران را دوست دارد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 ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. همانا کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی میفروشند آنها بهره در آخرت نخواهند داشت خداوند در روز قیامت با آنها سخن نمیگوید و به آنان نمینگرد و آنها را از گناه پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ و یقولون علی الله الكذب وهم و از میان آنها گروهی هستند که زبان خود را به هنگام تلاوت کتاب آسمانی چنان می‌گردانند که گمان کنید آنچه را می‌خوانند از کتاب آسمانی است در حالی که از کتاب آسمانی نیست و می‌گویند آن از جانب خداست در صورتی که از جانب خدا نیست و بر خدا دروغ میبندند در حالی که خودشان هم میدانند ما کان لبشر این یؤتیه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس کونو عبادا من دون الله ولكن ولكن كونوا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند به او کتاب و حکم و پیامبری بدهد سپس او به مردم بگوید به جای خدا بندگان من باشید بلکه سزاوار پیام بران این است که به مردم بگویند به سبب آنکه کتاب آسمانی آموزش میدادید و از آن رو که درس می ربانی و خدایی باشید ولا یأمركم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا و نه این به شما فرمان دهد که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید آیا شما را پس از آنکه مسلمان شدید به کفر فرمان می دهد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 قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشهيدين و ياد بیاورید هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمت دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می کند باید به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید آنگاه فرمود آیا اقرار کردید و بر این امر پیمانم را پذیرفتید؟ گفتند اقرار کردیم فرمود پس گواه باشید و من نیز با شما از گواهانم و من تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون پس هر کس که بعد از این پیمان روی گرداند آنانند که فاسق و نافرمانند اف غير الله يبغون اف غير الله يبغون و اسلم من في السماوات و آیا کافران جز دین خدا را می جویند؟ حال آنکه هر که در آسمانها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و به سوی او باز گردانده می شوند. قل آمنا بالله و ما وَمَا أنزل علينا و ایبراهیم و اسماعیل ويعقوب اسحاق و یعقوب و الاسباط و اوتي موسى وعيسى من ربهم لا نفرق بين احد منهم و له مسلمون بگو و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسمایل و اسحاق و یعقوب و اسباد نازل گردیده و آنچه به موسا و عیسی و دیگر پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده ایمان آوردیم میان هیچ یک از آنان فرقی نمی و ما او را فرمان برداریم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ من فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ و هر کس که دینی غیر از اسلام برگزیند هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران است كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين چون خداوند قومی را که بعد از ایمانشان و پس از آنکه گواهی دادند به اینکه که پیام بر برحق است و برایشان دلایل روشن آمد کافر شدند و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند، اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین آنان جزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست قال الذين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون در آن لعنت جاودان میمانند نه عذاب از ایشان کاسته می شود و نه آنان مهلت یابند الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فإن الله غفور رحیم. مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و اصلاح و درستکاری نمودند پس بی گمان خداوند آمور مهربان است ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون <تصفيق> هم اناسانی که پس از ایمان خود کافر شدند پس بر کفر خود افزودند هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد و آنانند که خود گمراهانند این الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ فلن فَلَنْ من مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذهبا ولو وَلَوِفْتَدَى بِهِ اولئک لهم عذاب الیم و ما لهم من ناصرین به درستی کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند اگر چه زمین را پر از طلا کنند و آن را برای خود فدیه دهند هرگز از هیچ یک از آنها پذیرفته نمی شود آنان را عذابی دردناک خواهد بود و یاورانی نخواهند داشت